سلام آقا سلام بفرمایید. میخواهم حساب باز کنم حساب پسنداز میخوایید؟ بله من یک حساب پسنداز میخواهم حساب ارزی شما پول به خارج از ایران میفرستید؟ نه پدرم از خارج برای من پول میفرستد ممکن است؟ بله البته لطفاً این فرم را پر کنید فارسی میدانید؟ بله بفرمایید آقا متشکرم اینجا را امضا کنید این پایین یک کپی از گذرنامهتان هم به من بدهید گذرنامه اینجاست ام اما کپی ندارم روبروی بانک یک فروشگاه است. از آنجا کپی بگیرید. بسیار خوب.